ونذرنا له ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زهر الفصاد في البر والبحر بما كسبت أيد الناس ليذيقهم بعض الذي عمل لعلهم يرجعون صدق الله خالقنا العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين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 آیه شلویک، السوره روم به حضور مبارک شما تلاوت شد الله از ال جلال در این آیه گرفتاری هایی که روی این خوراک زمین هستند. می فرماید که بسبب اون چیزی که خود انسانها ان مشکلات و معضلات را برای خود ایجاد کردهاند، ان مشکلات و معضلات به دست خود انسانها بوجود آمدان اگرچه که تقدیر الهیم هست اما یک مسئلهی که انسان را گای گرفتار می کند و انسان دون گرفتار می شود عمل کرده و خود انسان ها هستن از ما هست که بر ما هست فساد در عالم در بیابان و خشکی یا مطابق تفسیری که در تفسیر مراوی گفته که منظور از بر بیابان هستند و از بهر شارها هستند. حال چه این فساد در بیابان ها باشد و چه در شارها باشد؟ یا مطابق عموم مفسرین گفته عموم مفسرین چه انفساد در بیابان باشد و چه در دریا و در آب باشد قرآن مجید کتابی هست فراتر از زمان و مکان در ابتدای امن سوره می یک تبری را قرآن گفتند که حتی برای مردم اون زمان تعجب آور بود بلکه بعضی به تماثر می گفتن که ببینیم تا چی می شود در ابتدای این سوره که سوره روم هست اللہ از جلال فرمودند که غلبت روم فی ادنیل ارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون روم در نزدیک ترین سرزمین خودش که مرد که با ایران داشت مغلوب شد و بعدا فرمود که و هم من بعد غلبهم هم که این غلب به معنی مغلوبیت است مصدر به معنی مغلوبیته و هم من بعد غلبهم هم سیغلبون. زود است که بعد از مغلوبیت خودشان غالب بشوند مشرکین مکه که اون زمان ایران قدرت خیلی بزرگ بود در مقابل روم و روم همیشه از ایران شکست میخورد که در درانجام فرمود که غلبت روم و پیدن الارضه روم در سرزمین خودش در امون جایی که نزدیک ترین مرزش ایران بود که میگن اسم انشار بسرا بود در اون شکست خورد و قرآن گفت و هم من بعد غلبه هم بود مشرکین تعجب کردن که این چطوری میشود که وقت برسد که ایران در مقابل روم مغلوب بشود به این سبب این را به مسخره گرفتند چون هست و در انجام خداوند امنطوری گویه که از عالم غیب گفت که زهر الفساد ظاهر گردیدن و می فساد في البر والبحر در بیابان و در خشکی بما قصبت عید الناس بسبب اون چیزی که کس کردند دستهای انسانها این چرا حس لیو ذیقهم تا که بچشاند الله از دل اونا را بعد اللذی عملو همه اذابها را خداوند در دنیا نمیارد آرد بلکه باز را می در ابتدای قرآن در سوره ابتدایی هست که ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون شما خدا را غافل اصاب نکنید از اون کارهایی که انسان ظالم انجام میدن انما يؤخرهم لوم تشخص فيه الابصار اونها رو تاخیر میدهد برای روزی که اون روزی که چشمها دگرگون میشوند اون روزی که همه سراسیمه می شوند خداوند برای اون روز اینا مهلت می بعضی وقت در دنیا اللہ ازالجلال افرادی را می گیرد و اما که در دنیا اون را گرفت در آخرت نمی گیرد را در دنیا هم گرفت غرقش کرد و می پرمیند او اغرقو فا ادخلو نارا النار را یعرضون علیها و عشیا آتش جهنم سول و غروب بر فرعون و فرعونیان ارزه می شود و روز خیامت که می شود می آل فرعون اشد العذاب فرعون و فرعونیان را به سختترین عذاب داخل بکنید یک گوشه از گرفتاری هایی که در دنیا رخ می از عذاب خداوند هست و عذاب بزرگ و عذابی که به عنوان عذاب بزرگ و کبرا تعبیر شده برای روز قیامت هست می فرمین که خداوند در اینجا زهر الفساد و فی البر و بما کسبت اید الناس لیوزیقهم تاکی بششانم اونا را بعد الَّذی عملو ما دمون چیزایی که در دنیا عمل کردان عذابش برسد لعلهم يرجون حکمت این است که شاید اینا برگردن اگر خداوند عذاب تلنگوری یک چیزی را انسان انسانها به هوش بیاند به سر را بیاند و برگردن علام آلوسی در تفسیر روح المعنی می فرماین که مراد از فساد که قرآن در اینجا گفته اون آفات و گرفتاری های هستن که انسانها در دنیا اونا را می بینند مثلا باز وقت حسالی میاد اونا را می گیرد مردم گرس نمی شوند حرسالی و گرسنگی اونا را می گیرد بعض وقت امراض بدنی مریضی های و علاج مریضی های خیلی بد در جامعه می افتن. یک مرسا می بینی که می که وبا افتاده یک مرسا می بینی که می گوین ام مرغی آمده یک مرسا می بینی که Legisl也 جنون گاوی آمده یک مرسا می بینی که میگ فلان مریضی آمده مریضی عجز آمده می فرمند که امراض به سبب امون آمال خود انسان ها الله اللهم حلوسی می فرمند که آتش سوزی غرق شدن در آب یا این که در امور زندگی برکت از زندگی انسان ها می رود. می بینیم که در خانه برکت نیست در زراعت برکت نیست در درآمد برکت نیست همه چیز میاد و خیلی سریع تمام می شود گرفتاری ها خیلی زیاد می شوند. می که اینا همه جز امون فساد هستند که چه جوزی همون گرفتاری های هستن که لیوزیقا و بعضا لذی عاملو فاکه خدا اون دونا را بچشاند این یک مذده کوچی که از عذاب خدا است که در دنیا انسان ها را میگیرد گیرد یا چیزهایی که مفیدن خیلی کم می شون و نقصانها بیشتر از نفع به وجود میان الله علوسی می فرمین که این بعضی امون چیزی که خدا می بند در دنیا من اون را می هستند. البته بعضی از مفسرین ماننده عبد الرحمن حسن نکوت المیدانی در زمنی این آیه باس خیلی مفسری دارد که شاید امروز اون موضوع تمام نشود برای افتحای آینده بماند که حتی انسان محل زندگی خود را محیط زیست خود را کره زمین را امروز بپساد کشیده کیه کیه کی یکی یکی اونجا نامی برد مثال اول مثال دوم مثال چند دوم که انشالله در ابتدای این اگر حیات باقی بود به آرده شما عزیزان میرسانم. حالا دو جمله قابل غوره درن آیه کی یکی لیو هم عملو و دوم لحال اگر عذاب خدا میاد گرفتاری میاد. انسان باید بخود بیاد و از اون معصیت از اون گناہ از اون بد باید توبه بکنت برگردد اون کار رہائی بد و زشت را رہا به این سبب جمله دوم لعلهم یرجعون تاکہ ان انسان ها برگردن ان, ان عذاب ها آمیان کے این انسان ها برگردن و گنا و ماسیت را کنار بگذارن یکی از بزرگان که بلخی معروف زاهد معروفی هست جمله زیبای را می فرماین بگه بعض افراد و اشخاص از خردن حرام از مال حرام پریز نمی کنن. چه به صورت دوزدی چی به صورت رشوه چی به زورت خیانت در بیت این اموالی که اصلا حق تصرف در اونجا ندارد و برایش حرام است میگه خوردن اون خودداری نمی در اینجا شقیق بلخی می فرماید که اون ظالم یا اون حرامکور بر خودش ظلم نکرده بلکه ظلم بر همه آلم رخ داره دو علت اینجا بیان می اون بزرگوار شخیق می که یکی اینکه که کسی که ظلم میکند، مال مردم را به حرامی می خورد و به و غیره مال مردم را می خورد می که اون بر عالم ظلم کرده چون رسم ظلم و رشواره گذاشته در عالم بر یک شخص خودش یا بر شخصی که مال اون را گرفته بر اون ظلم نکرده بلکه ظلمش بر عالم شده چون ظلم را و حرام خوری را ترویج داده و الان وقتی که در جایی که رشو باشد در جایی که زرزور حاکم باشد اونجا حق هیچ کسی به اون نمی رسد حق به حقدار دار نمی این عدالت است که حق را به حقدار میرساند. می رساند نه ظلم و جور و زورگیری و رشو خاری فرمان اون تنها بر اون کسی که مالش را خورده و برخونش ظلم نکرده بلکه این ظلمش آلمی هست زهر الفساد و فی البر و البحر ما قصبت اید الناس اون را شامل می شود و دوم وقتی که ظلم زیاد باشد حرام خوری زیاد باشد انواب اقسام عذاب ها میانده من تورک در این آیمیات لیو ذیقهم بعد الذی عملو لحلوم یرجعون وقتی که ظلم و ستم و حرام خوری زیاد باشد می که رحمت های خدا گرفته می شود در مشکات یک حدیث هست که یک مرغ هست اسمش خبارا هست خبارا یک مرغ خیلی تیز پروازیه در بلوچستان این مرغ را من در اینجا چشمم نیفتاده بار ما این مرغ را دیده در بلوچستان زیاد بود در کشوره عربیم شاید بوده اسمش خبارا هست شاید شما در فلم های مستند و غیره دیده باشید این مرغی هست از بغلمون کمی کوچکتره اسمش به زبان بنوچی و فارسی چرز چرز سالگر می گفتن برای شکار حبارا چرب ها رفتن در کتاب های عدبی هست که اثر کرا اثر کرا انرا کرا می گفتن حبارا می گفتن فین الف نعامت فی القرآن این وقتی که می رفتند عرب هایی صدای سر می دادند که ای خبارا سر خود لفتا این کن پرار نکن ما شطور مرغ شکار کردیم تو که هستی اطرق کرا فا انا نعامتا فی القرآن در کتاب عدبی سابق ما طلبه بودیم و می خاندیم و درس می دادیم حلا خبارا امون مرغ چرز را می گویند رسول الله فرمودند که این در لانه خودش از گرسنگی میمیرد به سبب ظلم ظالم به سبب ظلم ظالم این حبارات در لانه خودش می میرد در شر مشکات در زمنیم همین حدیث آمده که صحابه میگوین این حبارات در فصل زمستان ما این در مدینه شکار کردیم وقتی که شکارش کردیم اون را بردم سنگدانش را وقتی شکافتیم دیدیم گندم سبز در داخل سنگدانش هست کلون حوصله هست به اسطلاح عربی آخر گفتم که در این فصل گندمی که خوشه و دانه داشته باشد نیست اتبالی در یمن هست از یمن تا مدینه دو هزار کلومتره یعنی این مرگ تورید تیز پروازه که صبح اگر گنگو می در یمن خورده غروب اینجا به مدینه شکار شده رسول اللہ عنوان اون مرغ با اون تیز پروازی که یمن دانه می خورد و مدینه شکار می شود لتجوعو لتموتو جوعا اون اون گرسنگی می میرد شخیق بلخی امین را می فرمین این حدیث که ظلم کی وقتی عام شد همه جارم می گیرد سالی و گرسنگی حتی اون حبارا را میارد. از پا در می علتش این است که ظلم متعدی هست تجاوز به حقوق دیگران عذاب را متعدی می کند همون طوری که حقوق دیگران را انسان پایمال می کند عظام هم که بیاد می حتی ان الحبارا تموت جوعا اون خباره از گرسنگی می میرد این گفته شقیق بلخی بود از می فرمین که شما زلم را کم بکنید آفات و مسائب, مسائب همه عالم را می حالا امروز ما می که واقعا ظلم همجا را گرفت زهر الفصاد و فی البر والبحر بما کسبت اید الناس تو با این خبرها را میشنوید؟ در عرفا او سال اول میلادی اول سال میلادی من است بابو جمله را اول سال میلادی هست نه سال نو اوناست اما تدابیر امنیتی طور زیاد شده که در بازاری که برای کریسمس خرید میکنن اونجا کامیون ها می میشوند افراد زیاد اونجا به کام مرگ میروند و در همه جا نیروهای امنیتی را چندین برابر کردن وعید برای اونا نامبارک و نامیمون شده چرا؟ برای اینکه که اونا میخواستند در کشورای اسلامی ظلم بکنند و ظلم را و کشتار و خون را برا بیندازن امروز گرد دامن خود اونا را گرفته یقی خود اونا را گرفته عید برای اونا شده روز عذا روز گرفتاری عید برای اونا عید سال نو اونا برای اونا گرفتاری شده دیگه نمی دانن چطوری عید بگیرن برای خرید کریسمس سمس کریسمس کری سمس چطوری بروند یه غی اونا گرفته این ظلم اون اونا بود که در کسورای اسلامی آمدن سر حاضرش کردن اما دامن خود اونا گرفته من بارها صحبت می شود از تروریسم از ترور از این صحبتها و همیشه ترور و تروریسم نبی کردن مسلمان می اندازن ما به گروه های افراتی و تندرو کاری نداریم اما علت ترورها ها چی هستن؟ حدود اپتا سال قبل این امین عروفایا امین سوری اون زمان این آمدند در قلب جهان اسلام در خاور میانه اون کشوری که قرآن از اون یاد می کند و اصرا و اسرامیراج پیغمبر بود سبحان الذي اسراب بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله فضامی ب سرزمین برکت بود و تعداد کمی یهودی را آوردن هنجم مسلّک کردن بنام یک رژیم سایونیستی سرزمین های مسلمانان را اشغال کردند و مسلمانان را کشتن قتل عام صبره و شتیلا بر آن این کارها را کردند و مسجد اقصار را اشغال کردند سرزمین فلسطین را اشغال کردند و مسلمانان که از خود دفاع می کردن همه همان میگفتند اینا تروریستن اصطلاح سلا تروریسم, اینا تروریسم. شرعیلت تروریستی چی بوده همون عروف ها بود که این طوری سرتانی را در اینجا در قلب جهان اسلام حمله اولی مسلمین را اشخال کرد آیا مسلمانان ساکت بمانند شما لانه یک مرچه را خراب بکنید شما را گاز می گیرد یک مورچه شما لانه اش را خراب بکنید اون شما را گاز می گیرد اولین علت این تروریستی خود اونا بودند که رژیم سایونستی و نامشروع را در اینجا حاکم کردند بعدا میگن چرا مسلمانان میاندینا را ترور میکنند چرا به شکلهای مختلف با اونا درگیر میشوند این درگیری را خود شما ایجاد کردید و من اخیرن شما شنیدید که قاتنامه از طرف شورای امنیت صادر شد حتی امریکا که حامی رژیم سایونیستی بود و تو نکرد نکر رای ممتنه داد اما بغیه به اتفاق در شورای امنیت رای دادن که پایان رژیم سایونستی شارک سازی را در سرزمین مسلمانان متوقف بکند اما اسرائیل بون عمل نکرد و ترامپ که تازه هنوز به کاخ سیای واشنگتن نرفته کاخ سفید نگوید اون هنوز اونجا نرفته در انترنت شما عزیزان خواندید که میگن اسرائیل قوی باش ما میاییم تو که بیایی چه غلطی میکنه. هنوزم حمایت میکنن باز میگن چرا تروریسم موجود آدم اون را نابودش میکنیم این علت اول اونجا هست و شعروی صابت افغانستان را برای چه اشخال کرد اونجا چید سهمی داشت کلان میگویند که بله تروریست همه جا را گرفته مسلمانان مظلوم افغانستان که در چادر زندگی میکردن در خانه های گلی و خشتی زندگی میکردن چرا مورد تهاجم ارتش سرخ شوروی قرار می گیرند؟ و مسلمانان با طفنگای سرپور با اونا می جنگیدند با چوب و تبر با اونا می جنگیدند اونا با بالاترین اوافیمهای روز اونا را بمباران میکردند خب علت اشغال تروریس موجود نمی اینا شما ترولیسم نه اینا مدافع وطنی خود بودن ده سال اونجا زلت کشیدند خاری کشیدند آخر به زلت و خاری از افغانستان خارج شدن همین پوتینی که امروز اون را در فضای مجازی قدرت شخص تابیر میکنند کنن در دنیا قدرت منترین یعنی پستانی انسان ها قدرت اگر اونطوری باشد کارمان کارمانان فرعون که کودک کشته کارمان کارمانان کی هست فرعون یذبحون ابناکم و یسحون نسائکم در چشنه انگوش که فرون فاشی شورایی شود خصوصا در چشنه <سؤال> آیا مردم را قتل عام نکردم اون زمان یادم هست من درمی از همین تریبون قصد ما دعا میکنیم که خدا این پوتین را تبدیل به یک دنپاهی کونه قرار بدهد مسلمانان چشم را قتل عام کردن جوهر ددایف کرد رئیس جمهوری منتخب مردم بود به دستور همین پوتین ترور شد این ترور را که سنت کرده کی قرار داده ترور بسته و اجرایش کرده حالا در سوریه چیکار کرد؟ و بعدا هجیب رکاسه های خود را نظامی های خود را برای مناسبت سال نوی میلادی میفرستد که بروند در لازقیه اونجا جشن و پای کوبی بکنن شراب بخورند زنا بکنن، رسوایی بکنن، اما میبینیم که قدرت الله زلجلال فوق قدرت هاست اونا را به قهر در یه میبرد که دوازده جسد اونا پیدا شده ای فتیم به قدرت نناز شما را اگر چخان کردن که مرد اول دنیا از روی قدرت هستید قدرت هست حوق قدرت همه قدرت ها اون قدرت الله جل جلال هست عزیز مقتدر هست الله جل جلال چرا عزیز مقتدره چطوری شما را آزاد دار کرد چطوری از ای عمومی کردی از عزای مسلمانان خبر نداشتی از عزای اونا خبر نداشتی خداوند هزاران گردن شما انداخت که نظامیان شما و اون مست مخمور و شرابیان شما و های شما و های شما چه خداوند در دریا انداخت و نابود کرد معذب باش در همه دنیا دیپلمات های شما در خطر در ترکیه که را کشتند. در دیگه یا دیگری نمی کشند در دمشتم سفارتخانه روسیه را با فارا زدند همه اینا ما دنبال میکنیم به خود بیا ظلم نکن بر مسلمانان به هیچ نامی که خداوند ظلم را و ظالم را نابود خواهد کرد حکمیم ملی افغانستان و عراغ امریکا و انگلیس اشخال کردن نتیجه چه شد چه نتیجه گرفتن غیر از اینکه انسان های بی گنا، فیر زن و فیر و افراد بی را نابود کردن نتیجه نگرفتن و از طرف دیگر دم از حقوق بشر می زنن. که ما طرف حقوق بشر هستیم حقوق بشر یعنی اصریه فروشی حقوق بسر یعنی شعرها را و ایران کردن حقوق بسر یعنی زن و مرد و پیر و جوان و پودک و بیمارستان ها را نابود کردنه این حقوق شماست که دم از حقوق بشر می زنید از اما گفتم که این هستند از طرف اللہ زلجلال و از انسان هایی که اقل و فکر و ما بیایم حق هر کسی را به خودش بدهیم در همون کشور اگر مردم اعتراض علی حاکم خود داشتن ما حق به مردم بدهیم حرف اول و آخر را مردم میذرن نه یک آکم ظالم که به هر طریق با زور و زر و تزویر بیا حکومت می کند اون نیست بنا همه عبرت هستند باید ما از این کارها عبرت بگیریم و به خود بیاییم هنوز این تفسیر این آیه تمام نشده یک نکته‌ای که تذکر هست این مسئله‌ای که اخیراً رسانه‌ای شد افشا شد باید ما اول حقوق انسانی را رعایت کنیم با بعدا حقوق را که در کشور ما که همه این نفت و ذخایر مردم زنده گور بیشتر در گورستانها زندگی بکنند من نمیخوام از این مساله سوء استفاده بکنم اما واقعا وقتی که این خبر تکان دهید را من شنیدم که در حاشیه شیش تهران ماه زاهدان و غیره صحبت می کردیم که اونجا خاره مردم را خراب نکنید سرپناه این از پره زمین نیمدن و دک در حاشیه شار تهران در پای تخت ما واقعا برای ما این آرست منی مولا منی معمم شرمونده می شوم وقتی این حرف را می شنوا. والله اگر مسئولیتی می داشتم من به غار پناه می بردم که مردم چهره من را و غیافه من را نبینند واقعا برای ما آرست که در کنار پایتخت، در شارستان شاریه در سی قبر پنجانه نفر زندگی بکنند این مصیبت برای ما این همه تبلیغات ما داریم این همه بنیر می چسفانیم. این همه پارچنی می میکنیم، کنیم این همه تبلیغات داریم ما برای مردها قبر درست نکنیم برای زندهها ها خانه درست بکنیم این زنده ها به قبرها فنا. نبرند این آخرین پیام من است و خدای مطاد همه ای ما را انصاب بدهد یک حقوق اسلامی ما حقوق شعروندی ما حقوق انسانی ما رعایت بشود من مطاد و مطادان را دوست ندارم مما وقتی که مظلوم واقع بشوند در قبرستان زندگی بکنند داخل قبرهای آمده زندگی بکنند واقعا دل انسان می سوزد عدرت عمر برای یک مسیحیه کے بدحال بود گریه کرد. غلامش گفت چرا گریه میکنین غیر غیر مسلمان مگر انسان نیست انسانیت کی هست در وجودش من برای انسانیتش گریه بھی انیسانت مدهل آن در آمده منم واقعا گریه میگیرد وقتی این مسائل را میشنوین برای ما زبان و قومیت و مذهب و مثلت مثلا نیست برای خودم انسانیت مثلا این انسانیت به ما دستور میدهد که حق دیگران رضایه نکنیم به انسانهای زهی بناسیم طاوان داریم دستی یک کسره بگیریم و دهانش را شیرین بکنیم این کمال نیست که مشت به دهانش بزنیم و صلی الله و تعالی و سلم علی خلق محمد و علی و اصحاب